نعم ناموس الدهر و امام العصر حجت ابن الحسن العسكري المهدي ارواحنا فداكم ختمت قدو فلا نتح الله على اعدائهم اجمعين من الان قیام يوم الدین خب خدا رو شاکریم ام سالم سعادتی شد در این شب نورانی ماه مبارک رمضان ما بتونیم در این هیئت محترم به حول و قوه خداوند انجام وظیفه کنیم و این چند سالی که ما سعادت داریم شب ماه مبارک در این هیئت انجام وظیفه کنیم یه شرح کوتاهی رو عرض می‌کنم بر نامه امیرالمومنین علیه السلام خطاب به امام حسن مجتبی علیه السلام در نهجل البلاغه نامه سی و یکم. که این نامه خلاصه سراسرش مطالب آمیزه که امیر از خودش برا فرزندش به یادگار گذاشته سالهای قبلم گفتم اصلا این خودش یه درسه که آدم نباید فقط مال و منال برای بچاش باقی بذاره هر کسی باید یه مطالب حکمتامیزی و فراخور خودش برای بچهاش عرص بذاره به یادگار بذاره خیلی هم اثر داره حرفی رو که یه پدر لحظه مرگ میگه یا مادر لحظه مرگ میگه خیلی در فرزندانش تأثیر دارد از اونجایی که دخترها جمع شدن دور بستر مادر این مادری که داره از دنیا میره بگه دخترای من اگه میخواین من از شما راضی باشم چادورتون رو کنار نزدید این, این خیلی تحصیل دارد غیر یه واعزه که بالا منبر میگه یا مثلا پدری بگه به بچه هاش که اگه میخواین من از شما راضی باشم نمازتون رو ترک نکنین یا نمازتون اول وقت بخونین اینا یه وقت بینید سی سال بعد میگن چون بگن پدر ما وقتی پاش رو به قبله بود اینو به ما گفت که که نمازتون رو به پایین که به تخییر نیفت. این خیلی تاثیر دارد حالا این نامم سراسر خلاصه مطالب حکمتامیزه الان ما چند سال اینا رو شرمیدیم یه میگه گوشش رو تونستم بگیم واقعا دریای از مطالب حکمت حکمتم خیلی ارزش دارد از علمم بالاتر خدا در قران میفرماید که و من یو تل حکمت فقط اوتیه خیرن کسی را آیه قرآن خدا میگه اگه من به کسی حکمت بدم خیر فراوان بشتادن علم نه وقتی به علم میرسد میگه و ما اوتیتوم من ال علم الا قلیلا آل. ما همچین علمی به بشر ندادیم که یه چند کلمهی بشر میدونه همه این علوم بشری در مقابل مجهولات بشر مثل یه است در مقابل اقیانوس ها و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا اما راجب حکمت خدا اینجور پیامبرم میفرمودن فرمودن انم مدینت الحکمه و علیون بابوها واقعا هم همینطوره می من شهر حکمتم علی درشه <تصفيق> هر کی دنبال حکمته بعد بیاد در خانه علی مثل راه دیگه ای هم نداره چون شما وارد یه شهر می خواهیم بشین و از کجا ببینین از در بایدین از دروازه باید ببینین این معناش اینه که اللیون باب ها یعنی همونطوری طوری که وارد هیچ شهری نمیشه شد مگر اینکه بعد از اون دروازه وارد شد کسی هم به حکمت دست پیدا میکنه مگر اینکه در مقابله امیر المومنین زانو بزند دریا و یه حکمت حالا امشب شب اول این جلسه است از دنباله اون فراز نامه که از سال گذشته مونده حضرت میرسد به اینجا هر جای این نامرم بخونی. همهش حکمته هیچ فرقی با هم نمی کند بسید حالا همین جملهی که الان میخوام بخونم به پسرشون میفرماین وعلم یا بنایه این خیلی محبت آمیزه این آتفیه من دیانم موعظه رو بعد نرم بگه من زهرم یه جا صحبت کردم بردم خدا وقتی میخواد فرعون رو هدایت کنه دو تا پیامبر رو میفرسته دو تا برادر که حضرت موسا و هارون هر دو پیغمبر بعد به اینا میگه که خدا چقدر مهربون جوانا میگه قولا لهو قولا لینا بودم <تصفيق> خیلی عجیبه آقای میگه رفتین باش نرم صحبت کنینا درشت نگینا چرا من این آدم قدیه سرکشیه اگه بخواید درشت بگین لج میکنه لجاجت میکنه نرم باش صحبت کنین لا یتذکر او یذکر میگه خدا رو چی میگه چرا شاید اینم متنبه شود شاید از خواب قفلت بیدار شاید هدایت شود خدا ناامید نیست از اینکه فرعون رو هدایت کنه این ترتیب رساله ما که تو یک کشوری زندگی میکنیم که همه شیعه‌اند همه عاشق اهل بیت‌اند شما اینجا بگی مردم هدایت نمیشن خیلی نادونیه من فرعون چهل سال هرچی پسر تو بنی اسرائیل متولد می شد سرشون رو می بردید یعنی یه جنایتکار اینجوری زب می کرد دیگه نه یو زبهون اپناه قرآن می فرمد سر می بردید پسر رو چهل سال تو یه قوم اینو خدا میگه که باش نرم صحبت کنی شاید متنبه شد وعلم یا بنیه امامم میفرماید تسقیر دیگه ای پسرک عزیز من این خیلی آقای اون محب آتفیه تو زبانه شاید معادلش ترکا میگن بالام با نمیدم چی بگم ترک ها, ها, خیلی ها هم خیلی آتفیه هست همین یه بالام که میگه آدم خستگیش در می آتفیه دیگه این بنیه بنیه یه چیزی مثلا تو اون قاله باز ای فرزنده پسرک که دل من وعلم یا بنیه انکه انما خلقتل الاخره لا دنیا ول الموت لا للحیال خیلی آقایون این جمله ارزش منده در حکمت می پسرم بدون که خدا تو رو برا آخرت خلق کرده نه برای دنیا <تصفيق> خیلی آقای اون این حرف ارزش داره دار خدا خلق کرده تو رو برا آخرت نه برای دنیا نه نیومدی اینجا عیش نوش کنی اومدی اینجا عبادت کنی آخرت تو بسازی بزن اشتباه های گرفتن دیگه خیلی هم دنیا جای ایشو نوشه همش دنباله اینن که ایشو نوش کنن. تا میرن یه روز تحتیله میگم بریم فلان جا. من دو سه روز پشت رو هم تحتیلی باشه. میگه بریم شمال که خوبه. آنتالیا کجا. شمال که خوبه. مسجد شمال. تا میبینه که چند الان تعطیلی پشت سر همه. چون که دنیا فقط برای ایشو نوش بعدم از اونجا زنگ میزنه میگه میدونی الان کجام این بند خدا هم آه میکشه میگه خوشا خوش به حال خوشا به سعادتت میگه کاش منم پول داشتم میومدم میزنه تو سرش میگه من هر چی میکشم از این بی پولی میکشم بشر خیال میکند که برای ایش و نوش خلق شده خیلی آقایون این حکمت میز خاطره میگه می بدان که خدا تو رو خلق کرده برای آخرت دنیا که دو روزه اصلا تموم شده دنیا که اصلا تموم شده ماها که دیگه آقا محاسنمون سفیده که اصلا واقعا پامون لبه گوره نسل جوونمون هم اینطور دنیا دو روزه دیگه چشمه هم بزنی شما مثل ما میگه خدا تو رو برای آخرت خلق کرده نه دنیا خدا تو رو برای مرگ خلق کرده نه زندگی من <تصفيق> جن این باش که خوب بمیرین نه اینکه خوب زندگی کنی یعنی زندگی منظرم زندگی آسایشا ولی خوب زندگی کردن که خوبه زندگی خوب میدونی زندگی امام حسین یعنی که تو زیارت آشورا میگین خدا یاد حیات ما رو حیات اهل بیت قرار بده زندگی زندگی امیر المومنین زندگی زندگی از زهران مرگ ما را هم مرگ احل بیت قرار بده اونا اونو منظورم اون نیم بعضی خیال میکنن که زندگی خوبینه اینه که ایشونوش کنن خدا تو رو جوانا خدا شده من توی مصل این جملات امیر المومنین هر کدومشو میخونم اینجوری ها این خیلی حکمت آمیز که خدا یاد خدا تو رو برای آخرت خلق کرده نه دنیا این هدف خلقت من در قرآن این بحث رو که آماده می کردم خب خدام تعبیرات خیلی فوق‌العاده‌ای دارد راجب هدف خلقت دوتاش رو می کنم تا کلام امیر رو معنا کنم بینید خدام تو قرآن راجع به هدف خلقت صحبت کرده یکیش این است ما خلقتل جن نوال انس الا لیعبدون اونم شبیه اینه میگه ما خلق نکردیم ایش رو نوش کنید میگه من خلق نکردم که تو خلق کردم روزه بگیری خلق کردم نماز شب بخونی من تو رو خلق کردم عبادت کنیم لیعبدون نگفته،, نگفته که من تو رو عبادت کردم که بندگی منو بکنی نه من که چیزی نمیبرم که من که نیاز ندارم که خلقت کردم بندگی بکنی برای خودت شما نیاز داری خدا که نیاز ندارد که به پیغمبر میفرماید منالایل خوبوش بینین منالایل فتحجت بهی نافلتن لک توجیه بفرمایید میگه شبا یه خورده بیدار باشه انقدر میخوابی شبا رو یه مقداریشو بیدار باش نافله نافله یعنی نماز اضافی نافله یعنی نمازی که واجب نیست نماز زیادی بخون نماز اضافی بخون لک برا خودت چون من که نیاز ندارم که تو شب اول قبل احتیاج داری برای خودت بخون و یه گلی به سر خودت بزن یه جمله قرآن دارد دا آیون با طلا نویسند منان تلا از باب اینکه مردم طلا رو خیلی ارزش براش قائلند حقش ادا نمیشه خدا گفته این احسنتم احسنتم لانفوسکم و این اصعتم فلاها شما هر گلی بزنین به سر خودتون این که دارین روزه میگیرین آقا دارین گل میدنین به شب اول قبرتون اونی هم که روز خاره داره آتش میفرسته برا شب اول قبل احسان میکنی به خودت میکنی بدی میکنی به خودت میکنی خدا که مگه کسی بخوره خدا مثلا میگه کمرم شکست مثلا خدا میگه وای کم نصف تیرون دارم روزه میخور میگه اینقدر بخورن تو بتن اصلا خدا که دیگه بابا اصلا چه اون چه نیازی دارد که شما یه نهار بخوری یا نخوری میگه من خلقت کردم برای عبادت کنی برای خودت چون تو برای آخرت خلق شدی نه دنیا تو و توشه برداری برای امروز. من باید توشه برداشت بخاطر این باید چراغ بفرستی فرش بفرستی شب اول قبرتو آباد بکنیم. مرگ شیرین داشته باشیم. من این یه دونه از... دیگه هم میخواییم بخونم. ما خلقتل جن ول انف الا لیعبدون. بخاطر این بشر هم این ها بشر آقایون روی آرامشو نمیبینه مگر اون موقع که بندگی خدا میگونم. انا شما تو این ما رمزان حالت بهتره یا ماه شعبان. از هر وقت رو میکنی یا حال میکنی دیگه شما کربلا میری صفا میکنی یا تهرونی ولی اونجا عذیت هم میشی بحث اذیت نیه ممکن ها کسی کربلا پیاده بره تب بکنه پاش آبلم بزند اما چون در مسیر عبودیت صفا میکنه همون تو تب تو تب میگه حسین جون سال منو هم منو بتلب مجرم میکنی منو جا نذاری آب. میگن آقا خب مریضی میگه فدای سر امام میگه من عشقی که اینجا میکنم تو زندگیم نکردم بحث این بشر اینجوری از آب. بشر روی سعادت رو نمیبینه مگر رو به خدا کنه وقت این در قرآن هم میگه من اعرض انذکری میگه کسی بخواد از من رو برگردونه و روز خاری کند نمیدونم نماز داد من آرزو انذکری فعلا لهو میشتم زنکا میگه من هم عقوبتش میکنم زندگیشو تنگ میکنم چون پول لر یه ای بخو اصلا اصلا میگم یه میلیارد داره اما وقتی باش میشینی حرف میزنه اصلا دلش خونه بیمونه میکنه چه ممکنه ثروتمندم باشد اما روی سعادت رو نمیده چون پشت کرده به خود اما همونو شما بیا کربلو این چه عشقی میده میگه اصلا من تازه دارم معنی زندگی رو میفهمم من تازه دارم معنی حیات رو میفهمم تازه میفهمم برای چی خلق شدم تازه میفهمم که هدف خلقت چی بوده اینجا می که ما جن و انس رو خلق نکردیم مگه عبودیت این عبودیت چی؟ یعنی برای آخرت خلق کردیم برای دنیا خلق نکردیم برای عیش و نوش خلق نکردیم روزه بیشتر حال میده یا ده <تصفح> یا روز خاری تا بدونه که خدا برای عیش و نوش خلق چند زفر این شاعر رو بخونم چند خوردی چرب و شیرین از طعام <تصفيق> امتحان کن چند روزی در سیام حالا بیا یه چند روزم نخوردن رو امتحان کن چقدر خوردی آقا؟ چند خوردی چرب و شیرین از طعام چقدر آقا خوردی؟ حالا چند روزم بیا امسا رو امتحان کن چند گشتی خواب را و شبها و اسیر یک شبی بیدار شو دولت بگیر یه بارم بیا بیداری رو امتحان کن یه بارم بیا سرخیزی رو امتحان کن چقدر خوردی روزن رو امتحان کن چقدر پشت کردی به خدا یه بارم کربلا برو مکتب اماموسین رو امتحان کن خدا رحمت کنه میرزا اسمایلی دو شما ندیده بودید ایشونها هاییم که قد می گفت یه سبکی هست که جسارت نداره اینجوری صحبت کنه ما جسارت نداریم اگه اسم میرزا رو نمیاد منم جسارت ندارم می گفت همه بالا منبر میگن گناه نکن من میگم گناه کنیم بذار بیچاره ب... تا بفهمین تو گناه هیچ چی نی من میگم گناه بکن بذار به روز سیاه بیفتیم می گفت همه میگن نکن همه میگن روزه نخور من میگم بخور بذار بیچارشی شی تا بفهمی روزه یعنی چی همین میگن نکنه یه وقت جا بمونی کربلا نریم من میگم بمون تا بفهمی کیادت جا میکنی اونا که جا موندن چی می‌کشن اینم حرفی آقایون همین که خدا من ارزم میگه ازکری فئن له معیشتن زن این یه آیه اگه دوران یه آیه دیگه هم بخونم خدا میگه الزی خلقل موت و الحیا لیبلوکم ایوکم احسنو عملا یعنی چرا خلق کردی میگه میخوام امتحان کنم کی بهتر عمل میکنه یعنی کی فکر آخرت؟ باز دنیایی یعنی نه ایش و نوش نیست یعنی آقا چرا خلق کردی نظام مرگ و زندگی میگه من دارم امتحانتون میکنم ایو کم احسن و عملا ولی بله. کی آزره از زرگ و برق دنیا بگذرد رو رو خدا کند من میگم عباس ابن علی من میگم قاسم ابن حسن امتحان آقایون. اینا اوج میگیرن قاسم سیزده سالش آقای از همه این زرگ و برق چون اون میدوند برای آخرت خلق شده نه دنیا این خیلی کلام عمیقی هایون من اگه شما شد باور نکنی آقا من اگه سی شب مارم از اون بیام راجب این صحبت کنم سیر نمیشم چون همه چی تو اینه این چرا آقای سیزده ساله از زرق و برق دنیا چشمی پوشد میرد بعد میگه شهادت برای من از اصل گواراتره برای اینو این مکتب او چشیده او فهمیده که او رو برای آخرت خلق کردن نه دنیا عمده اینه که جلو از تو زهرار او سفید باشه. با گفت برادر زاده مرد در نظر تو چگونه هست؟ گفت احلامن الاسل این یه مکتبیه آقایون برای خلاقا ما این مکتب رو باید درکش بکنیم دیگه این یه مکتبیه که یه بچهی سی حالا اون سیزده برادرش اینجا خونه امام حسن ها شبام میایین اینجا نیت کنه اینجا خونه امام حسن سی شب مهمون امام حسنی اینجا یه خوبی که دارد بیت من خیلی اینجا رو دوست دارم چون نام امام حسن بالاشه امام مثلا خیلی کریمه مگه میشه آقا کسی سر صفره امام حسن بیاد دست خالی بره خدا را میفتی بگو داریم میریم سر صفره حسن بن علی مگه میشه آقا او چیزی به شما نده یه لغمه میخورد یه لغمه جلو سگ میدارد سگ سکتا برسه شما که میایی برای مادرش گریه میکنی <تصفيق> <تصفيق> یه لغمه میخوای یه رو همجور سگ میندا. بعضی خب خیال میکنن اینا محبته اومد گوه آقا سگه رو ردش کنم شما راحت افتار بکنین حضرت چرا ردش کنید چه مزاحمتی برای من دارد بعد گفت من حیامی کنم آیا ببینید این مرچی میگه؟ این چقدر کریمه من حیا میکنم کنم خودم بخورم یه گرستنهی من رو نگاه <laughs> میشه آقا این آقا سر از اون بشینه بخوره چیزی به ما نده <میشاه> <میشاه> حالا قاسمو گفتم من, من مدینه که می رفتم بقیه در درک وارد می شدم اونجا که نمیذارن زارن وایستی زیارت نمه بگوی همش احانت می دیگه خیلی امام حسن قریب من الان میرم مشهد کباب میشن اون احترامی رو که میبینم این خادما زائر رو میکنن دیوونه میشن تازه کفش رو درستی بهت میده در حرم امام رزا. این کفش و خادم هفتاد سالش هشتاد سالش اینجوری دو دارد. یه خادم دیدم که دست میکشه دو کفش من میمارد به چشمش منو نمیشناختن نه منو بشناسه میگه این زائر امام است اما اونجا میگم امام حسن حالا اونجا چی کار میکنم چون... از تو نمیدونم چون وایستی لغت میزنه یه حول میده من میدونم نمیزارند همین نگاه میکردم به قبر امام حسن میکردم به حق قاسمه <تصفح> به حق عبدالله عبدالله ده سالش بود ولی این, این میداند که آقای موندن یعنی چی گفت بمونم که چی بشه مگه با مگه من خلق شدم که زندگی کنم خلق شدم بمیرم میفهمد خلقت کردم برا مرگ نه برا زندگی بعد بری اونجا پس می پای امو رو می بوسید دست امو رو می بوسید می منو. امو جا نذاری من این،, این مکتب رو فهمیده امتحان همینه آقا من میخوام امتحان کنم کی از این زرق و برق دنیا می گذرت خدا؟ حجاجی رو ببینید الان نسل جوونه ما میدونم حرف اثر میکنه این بچه ها دیمونه میشن حجاجی رو ببینید آقا به پسرش میگه پسرم من از تو گذشتم میخوام به خدا برسم آقا این همین مکتب است برای که میگه من نشدم نشدام رو نوش کنم من برای آخرت قبل به پسر کوچیکش پسر چند سالشه میگه من از تو می بعد میگه از مادرت هم میذارم میخوام زینب منو قبول کنه این خیلی حرفه این این همین هم مکتب از آیون، این مکتب همچین بچه هایی تربیت می کند مختداش میشه قاسم ای شما آقا خوب بیای برای قاسم گریه کنی این راهه این میگه من برای آخرت نه شدم نه دنیا بخاطی این برای من از اصل گواراتره امروز اوله یه خوردم قلنگو رو دیر به من دادند من اگه جز بدید روز اول به همین اکتفا کنم اما خب شب جمعه است ما رمضان شب جمعه <تصفيق> معلومه همین شب اول میخوان ما رو ببخشون <تصفيق> خدا معتقد فردا شب بشی باختی بگو نه بگو شب نه بگو همین شب اول حالا انشاءالله شبای بعد میایم چیزای دیگه میگیریم اولین مانع گناه دیگه اولین مانع که نمیذاره ما چیزی گیرمون بیاد گناهامونه همون شب اول هم شب جمعه هم شبهای ماه مبارک رمضان هم واسطه ارباب بیکفنمون حسین علی امشب الان مادرش فاطمه کربلا آیون خانوما دلتون هوای کربلا نکرده دلتون هوای ابی عبدالله نکرده یه دو سه مرتبه بگم صلی الله و که یا ابا عبد الله رحمت خدا به این ناله ها صلی الله و علیک یا ابا عبدالله از همه حمل التماستو صل الله و که یا ابا عبدالله یه جام میبرم امشب ردخور نداره میخوام این قنداقه شش عبی ابی عبدالله رو بباس بگیرم باب الهوائجه حسینی啊 کربلایی啊 هیچ جا امام حسین نگفته کربلا جاتون خالی بود به حال من گریه کنید مثلا نگفته کاش بودال بودین گودال بودین دیگه نمی نمیکنم بگم چون چما طاقت نمیاری همون سربسته میگم نگفته کاش گودال بودی به حال من گریم نگفته کاش کنار علقمه بودین نگفته کاش کنار بدن علی اما وقتی میرستد به این این معلومه جگر امام و این مصیبت آتش زده از من اگه بپرسین کدوم مصیبت امام حسین آتش زد من میگم اینه میگه لایت میگه فی فیوم آشورا جمیع تنظرون کاش همه بودین میدیدین کیفه از تسقیل تفلی جور من دارم طلب آب برا بچم میکنم اما این قوم بیرحمه کافر دلشون برحم نیومد. اینا جملاتیه که خود آقا گفته داد میزد اللم ترهمونیم فرهمو حاضر رزی گفت به منم رحم نمیکنیم به این بچه شیرخوار رحم کنیم او کیفه یتلز و اتشا بله خب امام عرب بوده میگه تلزی فارسیش اینه است میگه نه اینه میگه این بچه رو دست من داره پروبال میزنه ماهی وقتی از آب میفته بیرون میپره بالا و میپره پایین دیگه. این بچه نمیتونم آتش بایین این بچه رو دست بابا میپرید بالا میخورد شبیه ماهی که از آب میاد چما این سندن رو تجسم کن یه بچه رو دست یه بابای بپره بالا و بپره پایین بال بالبال بزنه از شدت آتش حالا آب نمیدادن خب چرا تیر میزنید حالا بگو آقا آب نمیدید این آقا برگرده همین بچه تشنه رو برگردونه به روا هنو امام داشت صحبت هنو عرف میزد یه وقت همه محاسنش خونی شد تمام این لباسها قرده خونش من هیچ جا حسینی ها هیچ جا ندیدم امام حسین بیتابی کنه همه جا مسلط بوده همه جا اما به نظرم میاد اینجا امام دیگه این خونها رو میگرف میپاشید باسم آدم کلافه که میشه ای این زیر گلو خونها رو میپاشید باسم <تصفيق> میگن سه مرتبه این خونها رو گرفت اینجور میپاشید باسم من اینجا ندیدم خدا به امام حسین تسلیت بگه سرسلامتی بگه اما اینجا حاطفی صدا زد دوه هو یا حسن. حسین بست کن اینقدر خونه این بچه رو به آسمان نپاش ما براز بزرگش میکنیم ما شیرش میدیم هیچ بدنی هم ندیدم امام حسین روز آشورات دفت میکنه اصلا بدنی رو دفت نکرد اما اصخه آورد پشت خیمه ها با این قلاب چون امام میدونه یه ساعت دیگه روی این بدنا ها میدونه او اگه بخان روی این بچه شیرخار اسباب و دیگه امان از دل رباب <تصفيق> این بچه رو کرد زیره. همین که اومد خاک بریزه یه وقتی مادر این بچه صدا میزنه محلا محلا یبنز زهران مده های قدیمی میگن تا صدا رباب بلند شد قدیمی ها میگفتن اون مده دیگه ها نمیگن. تا صدا رو باب بلند شد میگن زینب دست امام حسینو گرفت گفت داداش بیا بریم کنار جلو تو روش نمیشه سیر این بچه رو ببینه با این مادر رو با بچهش تنها بذار هر چی میخواد بگه داداش خوبه نه این مادر اومد وقتی نگاه کرد دید نگاه میکنه تو صورت مادر لبخند میکنه صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبو عبد الله صلى الله عليك يا أبو